اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه شانزدهم گفته شد که در رابطه با اثبات مالکیت فکری و معنوی باید بحث کنیم که چه اموری باعث تحصیل ملکیت میشوند. شوند اسباب دو قسمان بعضی اسباب ایجاد ملکیت هم بعضی اسباب انتقال ملکیت طبیعی است که بحث ما در مورد اول جایگاه پیدا میکنه که تازه با اختراع ما میخواهیم ملکیتی رو ایجاد کنیم و ببینیم آیا ایجاد میشود یا نه لذا بحث از انتقال ملکیت منتفیس چون قبل از اینکه اختراع به وجود بیاد چیزی نداریم که ملک کسی باشد طالب به ملک دیگری در بیاید در رابطه با اسباب ایجاد ملکیت مجموعاً به سه سبب تمثق شده است یک تعهدات گفتیم با او ثابت نمی شود ملکیت فکری دو احیاء مواد که این هم نمی تواند موجب ملکیت مالکیت فکری و معنوی بشود و سبب سوم حیازت اشیاء مباه در رابطه با این سبب سوم گفته شده بود که حیازت چون تصرف از دو وضعید یا فراهم کردن وسائل تصرف و استیلا نسبت به مالکیت فکری قابل انتباغ است چرا؟ به خاطر اینکه هم شخصی اختراع می کند استیلا دارد بر چیزی و هم قصد تملک آن شیء را دارد خب آیا آیا بر در املاک و مالکیت معنوی و فکری آیا اینا مال مباه میشن یا نه؟ و مصداقشون همون چیزه که در قوانین اومدن یا نه؟ گفته اول از این مباهات محصور به مثالهایی که زدی شده نیست مثل اراضی آبها، معادم حیوانات، چیزهای گم شده اتکیقاها و چیزهایی که در زمین دف شدن، شکار و آخر و سانیان چرا اینا, اینا بهشون میشه بگیم اموال موباه یعنی بر اینها مال موباه صدق میکند که با تحقق حیازت تحت ملکیت شخص قرار میگیرند ما عرض کردیم که ظاهرا این چنین نیست چون اگر منظور از حیازت اینه که با ثبت رسمی قانونی تملیک می شود گفتیم رسمی نشدن و شدن غیر از به ملکیت در آمدن و نیامدن است و قبل از تولید و اختراع اصلا مالی در کار نیست تا بگیم آیا این به ملکیت میاد یا نه بعد دارم که اختراع شد و به صورت یک فکر ایده و تر درامد این دیگه مال موباه نمیگن که رابطش با همه مساوی باشه بلکه من که مخترع است به حسب ظاهر و مطابقه با ادعا حالا بعد اثبات بشه البته که آیا بعد از اختراع هنوز آیا این به عنوان مال مباه است رابطش با همه افراد مساویز یا خیر این انتصابی که نسبت به مخترع دارد و این نسبتی که با مبتکر و به وجود آورن اثر دارد غیر از نسبتوست با دیگر افراد یعنی اغلا این رابطه رو مساوی نمی‌دانند. چرا؟ در رابطه با کلمه هیازت که آیا در اینجاها صدق می کند یا نه باید متذکر بشیم که هیازت در لغت به این معانی آمده به استعمال شده یک جمآوری کردن دو احاطه بر داشتن سه چیزی را تصرف کردن چهار مالکیت نسبت به چیزی داشتن پنج حصول و در برداشتن شش تحصیل یا دست آوردن ظاهر اولیه این معانیی که ذک شد نشان میداد چیزی باید موجود باشد تا او را حیازت کرد یعنی حیازت به امر وجودی تعلق نه به امر ادمی جمآوری کردن باید چیزی باشه که انسان بیرا جمعآوری کنه احاطه داشتن باید چیزی موجود باشه تا احاطه بر اون معنا داشته باشه تصرف هم همینطور معدوم که قابل تصرف نیست مالکیت هم همینطور معدوم که قابلیت ملکیت و مملوکیت بر کسی و چیزی رو ندارد حصول یعنی وجود این هم معلوم است و همچنین تحصیل یعنی به دست آوردن خب به حسب ظاهر انسان چیزی را که تحقق دارد میره به دست بیاورد مگر اینکه، ما دست از مثال ها و استعمالات برداریم بیایم به لغت و ریشه لغوی او با دقت عقلی نگاه کنیم بگیم حیازت همین چنگ انداختن تصرف کردن به دست آوردن جمع آوری کردن منعه آم میست شامل میشه چه چیزهایی که بالفعل موجودند یا بالقوه موجودند ها. یعنی چیزی که بالفعل الان نیست ولی میشود او را به وجود آورد و موجودش کرد و سبقه وجود به او داد اونجا هم حیازت سرق میکند رو الان چیزی موجود نیست ولی با فعالیت جو به دست آورد حیازت میکنه مثلا اگر انسان ورزش بکند تنومندی و قوت و سلامت بدن خود را به دست می آورد تا قبل از ورزش و برنامه های ورزشی و نرمشی و چیزی در خارج موجود نیست قوت بدن و سلامتی در کار نیست اما انسان اگر حرکاتی را انجام بده به عنوان ورزش این باعث می شود که بعد از انجام ورزش و نرمش اون قوت به دست بیاید اون سلامتی و امنیت بدنی به دست بیاید اینجا میتونیم بگیم این فرد هازه حیازت کرد سلامتی را و قوت را به دست آورد علاوه قبل از ورزش چیزی نبود خود ورزش سبب حیازت شد اونتها اونا اسباب حیازتند. بعد از اینکه سلامتی حاصل شد این سلامتی که نتیجه و مسبب از اون سبب بود برای این فرد مسبب همین ورزشکار به انسان فعالیت کرده حاصل می شود میکنه هازهو یعنی او رو به دست آورد به چنگ آورد به دست آورد در بر دارد آن را با این تحلیل خب معلوم می شود در اونجا که کسی فکری طرحی ایده دارد و اختراع می کند و به وجود می آورد و مبتکر می شود حالا اصطلاحات ما عربی فرق میکنه کاشف با مخترع خب اینها به وجود آورد یعنی ف عالیت فکری، ذهنی و حتی به انضمام حرکت بدنی سببند برای اینکه چیزی به وجود بیاد، اون فکر، اون ایده، اون شیء تازه و نو و اختراع شده که تا حالا نبود، بله میشود گفت این هازه، او حیازت کرد این را، یعنی به تصرف درآورد به دست او آمد. در هیته او قرار گرفت اگر این چنین بگیم بله حیازت در اینجا صدقه می کند. لذا امور فکری و معنوی که مالی فکری و معنوی بر او اطلاق میشود، میشه بگیم اندل اغلا مال است بله این مال حساب میشود. شود تو قبل اینکه به وجود بیاد بالقوه مال است بعد از این که در خارج حاصل شد و این فکر پدیده شد به سطحیه نظریه درآمد، این حیازت برای سرق می کند و در ملک این آقای حائز هست که او رو به وجود آورده در نتیجه تعلقه به او دارد حالا می خواد چه سبت رسمی بشود چه نشود خوب حالا نسبت به حیازت اموال فکری چون این اموال فکری انواع و اقسامی دارند و مسادیق مختلف و متعددی دارند به طوری که اینها را در پنج دسته تقسیم بندی و دست بندی کرده اند روش حیازت های اینها آیا یکسان است یا مختلف؟ باید ما بررسی بکنیم آیا به صرف به وجود آمدن اون اثر هیازت هم صدق می کند یا نه صرف وجودش کافی نیست علاوه بر او احتیاج به امر دیگری هم دارد خب بله میشود گفت که اموال فکری همه یک ماهیت واحد دارند و اینها ناشی از فعالیت های ذهنی اون افراد می باشند، اما از نظر شکلی و حالات و اوصاف و عوارض با همدیه متفاوتند. خب حالا که اینه، آیا ببینیم روش حیازت های این آیا با هم متفاوته یا نه؟ اما اینکه به اموال فکری بگیم اموال مباه قبلا ارز کردیم این مخدوشه چون بعد از اینکه به دست آمد دیگه نمیشه به اموال مباه اموال مباه یعنی مالی که رابطه اش نسبت به همه افراد یکسان است و تا کسی چنگ رو نینداخته دست نینداخته و او رو به دست نیاورده و اصطلاحا هیازت نکرده همه در تملک او و او رو به ملکیت خود درآوردن آوردن مساویند اما انبال فکری یقینا این چنین نیست انبال فکری یعنی مخترعی فکری رو تولید کرده به وجود آورده و محصول زحمات اوست و با زحمت او به حیازت او درآمده آمده است و او حیازت کرده لذا دیگران نسبت به تصرف نسبت به چنین مالی نه اونها چنین حقی را ندارند. و نمی شود گفت اینها اموال مباه حساب می شود خب در رابطه با اموال فکری گفتن اینها پنج دستن یک بعضی از اینها جزء آثار ادبی و هنری حساب می شود. فرض کنید اکاسی نقاشی حکاکی پیکر سازی نوشتن کتاب و مقاله خب در رابطه با آثار ادبی و هنری همین که این آثار ایجاد شدند ملکیتم هم حاصل می شود به تعبیری ایجاد اثر هنری و ادبی موجب حیازت هست و حیازت سرقو میکند این یقینا این شنینه و مطلب واضحه ولی لازم می شود گفت که آفرینش اثر با حیازتش ملازمه دارند و از نظر قانونم این چنین است خب اگر میگن این فرد حیازت کرد این اثر ادبی را یا هنری را دیگه لازم نیست ثبت بشود یعنی همین تصرف بر این اثر معنوی دارد خب سبت بله یک کار تشریفاتی است ها و اینکه از این اثر آیا حمایت میشود یا نه آثار قانونی کشورهای مختلف آیا بر این اثر لوازمی رو بار می کند یا نه ها این دیگه مشروط به تشریحات و قمان اداری ندارد ولی این کتاب این آقا نوشته است لازمه برن ثبتش هم بکنن تا تعلقش به این فرد ظاهر بشود خب حالا که این چنین است خب حد اکثر اگر سند رسمی بهش دادن معنیش اینه که امتیازی به تو میدهند که به واسطه این تو موقعیت خاصی پیدا میکنی. حالا فرض کنی پول است میدهند یا تشویق است یا صلاحیت این که در بعضی از مراکز بتوانی وارد بشوی و امتیازهای علمی و غیر علمی بگیری خب این یک قسم است لذا خود این سبب در اصل حیازت اثری نداره ولذا در قوانینم همین طور است حمایت از یک کسی که اثر هنری درست کرده است یا ادبی این مشهوع به این نکردن که آیا ثبت کردی یا نکردی همین کسی اثری رو خلق بکند بله او رو حمایتش میکنند به عنوان فرد معلف، مصنف و هنرمند او رو قبولش دارند بله یعنی به محض اینکه اثری از خودش ایجاد کرد این اثرم یقیناً به ملکت خصوصی او در میاد چه کسی قبول بکند چه نکند چه ثبت رسمی بشود یا نشود در قوانم اینجوری برخورد میکنند خب حالا اگر کسی که مخترع است و کاشف است اثری رو برای خودش ایجاد کرده مسئله خیلی واضح است صرف ایجاد این اثر معناش این است که این در اخیار توست و تو مالک که او هستی و در نتیجه حق تصرف این اثر مال توست اما در اینجا یک فرضی و یک صورتی هست که باید مشخص میشه و اون این است که اگر کسی یک اثر هنری رو به وجود آورده یا آثار ادبی رو در قالب یک قرارداد است که برای یک شرکتی مؤسسه و نهادی بناس کار بکنه به عنوان مثلا پیمانکاری بناس به عنوان مسئول به وجود آوردن یک اثر به خاطر تعهدی که به اون نهاد داده است، اثری رو خرق بکند خب گفتن در اینجا خیر اینجا ملکیت برای صاحب این اثر ثابت نمی شود درست که این آقای مختره این اثر خاصو به وجود آورده و موجودش کرده و ظهور داده به او اظهارش کرده اما به صورت زمینی این حیازت به خاطر اون قراردادی که بسته با یه پیمانکاری و قراردادی که موجب شده این رو باید برای دیگری و به دیگری واگذار کنیم این معناش این است که اون دیگران حیازت بر این اثر دارند و لذا ملکیتین به شما تعلق نمیگیرد. خب لذا در قانونم اینطور آمده است که آثار ناشی از سفارش متعلق به سفارش دهنده است و این حق مالی اوست نه نسبت اون کسی که اخترار رو به وجود آورده است در قانون گفتن حقوق مادی اثرهایی که به خاطر سفارش ها پدید میان تا سی سال از تاریخ پدید آمدن متعلق به اون سفارش دهنده حساب می شود مگر اینکه کمتر یا بیشتر خودشون موافقت با هم بکنن خب آیا واقعا این چنین است اگر اثری در قالب قراردادی که کار برای دیگری بکند یا به عنوان پیمانکار اجرا کند یک اثری را و به وجود بیاره اثری رو آیا می شود گفت که تو حیازت نکردی ظاهرش این است بله اگر از اول قرارداد بسته است که من اثر رو به وجود می آورم این مقدار در مقابلش می گیرم یا نه به صورت پیمانکاری که ابزار کار، مواد، موضوعات، مسائل، نیازها همی چیز شما بدهید به من و من اینو تو قالب‌های لازم کارشناسی میریزم و شما به وجود میارم مثل یک وکیل، مثل یک نفر متخصص اجرای تر، تر رو دیگری کشیده تر رو دیگری برنامه و مقدمات و مبادیش رو آماده کرده اما در آوردن به صورت یک نتیجه اون می تخصصی میخواد یه علمی میخواد حالا بعضی از این کار را همه مقدمات مادی و غیر مادی رو دیگران تهیه میکنن اما ایجاد این اثر را به او واگذار میکنن همین پیکره سازی فرض کنید. کسی می‌خواد پیکره اصلی رو سازد، انسان رو بسازه. خب مواد لازم رو بهش میدن. گچ می‌خواد، سیمان می‌خواد، میلگرد می‌خواد، کارگاه لازم داره. تا آخر و حتی مثلا مجوزهای رسمی دولتی میخواد هر چی لازم داره این رو خود کارفرما و صاحب کار اون میاد تهیه میکنه در اختیار این آقای متخصص می و در اختیار او قرار میدهد خب این آقا بلد است که این مجسمه را به صورت یک اسب یا انسان یا گیاه یا هر شکلی دیگری که میخواد در بیاورد یا مثلا در رابطه با دستبندی کردن و منتاج منتاج هم سنعتی الان در دنیای امروز الان همه مواد ابتدایی هم باشه انسان بلد نباشه چی رو باید اول بذاره؟ کدوم و دوم بذاره؟ چگونه نصب کنه؟ چگونه متصل کنه اینها را؟ چگونه اینها رو به هم پیوند بده خب بلد نباشه نمیتونه یه ماشین به وجود بیاره یه وسیله به وجود بیاره مونتاژکاری ولو صنعتی است دست پایین در میان سنعت های پیشرفته امروز اما بالاخره خود یه صنعت این کار رو از همه بر نمیاد و همه نمیتونه این کار رو بکنن الان چه بسای کشورهایی که در راه تولیدات بسیار بالا هستند اینجور کارا اصلا خودشون انجام نمیدن قرار داد با کشورهای دیگه یعنی کشترهای مشترک و منافعی درست میکنن ابزار کار و حتی نقشه کارم به اونا میدن که شماها ها این رو اجرا بکنید شما این رو بسازید و این منتاج اونا انجام میدن و درصدی خب سود تعلق میگیره یا جداگانه میگن چه مقدار حق و زحمه شماست به شما میدهین و آیا وقتی که این افراد این اثر رو به وجود آوردن این مجسمه اسب را، انسان رو و چیزای دیگر رو به وجود آورد یا چون این تخصص مونتاژی دارد توانست با منتاج کردن اون چیزی که کارفرما توقع داشت به وجود بیاورد در این صورت نه این حیازت رو به اون کارفرما نسبت بیدن نه به این کارمند و کارگر ولو این تخصص داشته ولو این کار رو این میتونه انجام بده و دیگری نمیتونست انجام بده و بلد نبود و یا نمیتوانست این تخصص این آقا داره ولیزا او ابتکار کرد و این رو به وجود آورد این اثر هنری را اثر ادبی را مثل شعر گفتن هم همینطوره گاهی ما یه نفر مطلبی داره خیلی هم عمیقه خیلی بالاست با محتواس عرفانیه اما طرف خودش نمیتونه تو قالب شعر بزنه طبع شعر ندارد به کسی میدهد که طبع شعر دارد میگه آقا این تیکه را این قطعه را این موضوع را این مطلب را، این داستان را برای من در قالب شعر در بیاور و به صورت شعر بگو اثر شعری، اثر هنری و یک امر فکری است و جزء اختراعات حساب می شود همه نمی تونن شعر بگن طبع شعر رو همه ندارند و تا خود شعران درجه بندی دارن دسته بندی دارن یعنی یه است که، یک است که یکی از مواهب الهی است که به کم کسی داده شده خود اون که داده شده درجاتی دارن خب این آقا این کلام را این حدیث را آیه قرآن را کلام مثلا حکیمانه را یا مطالب عمیق را تو قالب شعر در آورد آیا این به مجرد این خودش حیازت میکنه و ملک او میشود یا نه ظاهرا گفتن خیر و قانون همین رو گفته است چرا؟ چون طبق قراردادی بنا شد شما برای دیگری کار کنی بله. و شما قرارداد بستی که اجیر دیگری باشی یا به با عنوان پیبان کار آن شما در یه ای در یه ای حالا همراه با خود کارفرما یا غیر او این اثر رو خلق بکنی و به وجود بیاوری معماری هم همینطوره مگر هر کسی میتونه خونه بسازه ساختمون برپا کنه و برج بسازه یا های با استفادههای متنوعی وجود داره به وجود بیاره و رو طرف دیگری آجر داده، آهن داده، متراج زمین رو داده، خودش همیرم داده اما به وجود آوردن ساختمان یه هنری است، یک ابتکاری است، یک اختراعی است که زمین بکر و خالی را به صورتی ساختمان شیک، شرکت و یک محسسه میتونه در بیاره با همه امکانات خب این چون به عنوان پیبان کار داره کار میکنه یا به عنوان عجیر مزد میگیره این کار رو انجام میده این اگر اثر رو به وجود آورد بله چنین اختراعی و چنین ایجادی ایجاد اثری ولا و حیازت صدق میکند ولی به خاطر قراردادی که با دیگری بسته و داره برای دیگری کار میکنه از اول تعهد کرده است که چی حیازت این مال من نیست مال است، مال فرد دیگر یا شرکتی دیگر یا هر نهادی دیگری است مال اوست من پولم او گرفتم و عجیر شدم بله در این صورت نه نمیگن این فرد مبتکر و مختره و هنرمند حیازت کرده است این اثر را بله در اینجا صرف ابتکار با نمی شود به خاطر اینکه در زمن قرار داد این حیاظت به فرد دیگری واگذار شده او در حقیقت ابزار کار است او وسیله است ابزار خودش کار این نیست در نتیجه حیاظت او ثرو نمیکنه آنچنان که شما وقتی که یه کاری داره انجام میدی با دستتون با پیچگوشتی، با احرام هایی که در اختیار داری نمیگن اون اهرم‌ها حیازت کردن این کار را دست شما هیازت کرد خیر اینو به روح شما و نفس شما و اون شخصیت حقیقی و حقوقی شما نسبت میدن، میگن بدن شما ابزار است لذا بدن شما مالک نمیشود نه خیر روح شما مالک میشه بدن صرف ابزار و وسیله است برای ایجاد اون اثر پس دسته اول حکمش کاملا مشخص است که صرف ایجاد او حیازت برای صدق میکند و موجب تملک هم می شود به دلیل بناء اغلا و همچنین ادله شرعیه تا ان در جلسه بعد دسته های دیگر انهاع مولیکت های فکری و انوال فکری مورد بحث قرار بگیره رسول الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین.